با درود بر شما هموطنان گرامی یکی از بزرگترین مشکلات مملکت ما اینه که از فرهنگ غنی خودمون، فرهنگ غنی ایران باستان فاصله گرفتیم و میتونم بگم که متاسفانه نسبت به اون بی اطلاعی. و تا اندرس هست از یکی از بزرگان ایران باستان که حدود 1600 سال پیش زندگی میکرده 300 سال قبل از 300 سال قبل از اسلام من این صد و در و برای شما میخونم گوش بدید و ببینید که چه فرهنگ غنی داشتیم ما در ایران باستان ای پسر من نیکوکار باش نه بدخار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد. آنچه را که گذشت فراموش کن و بر آنچه نرسیده رنجاندو مبرد. به رئیس و صدار خود گستاخ مباش و در خدمت استوار بیست. آنچه بر خود نیک ندانی به دیگران نیز نیک مشمار و با و رئیس ها و دوستان به یگانگی برخورد کن. خود را به بندگی کسی مصفا از هر کسی که با تو کینه ورزد و خشم گیرد کنار جوی همیشه و همه جا به خدا توکل کن و دوستی با کسی کن که بیشتر به تو سود برساند به فرمان یزدان و همسازندگان گوش کن هرچی شرقی و رفتار نما هر چه به اجله و بیهوده مگو زن و فرزند خود را از تحصیل باز مدار تا هم اندوه به تو نرسد و پشیمان نشدی بیهوده مخند قبل از جواب دادن تفکر کن هیچ کس را مسخره مکن با مرد بدکار همراز مشکو با مرد خشفین همراه مشکو با فرومایه مشورت مکن با مرز هم خوراک نشو از پست فطرت و بدعصل قرض نگیر و بام مده زیرا تنزیل زیاد باید داد و همواره بردر خانه تو بیستد و کسان بگمارد و این برای تو زیان بزرگی است مرد بر چشم را به معاونت خود قبول نکن مال خود را به حسود نشان نده از پادشاهان فرمان ناحق مخوا از مرد سخنچین و دروغو سخن مشنو در مجازات مردم چین مبرز در معبر عام مجادلین مکن با مرد بسیار مده مبل هم خوراک مشو راد مرد را مزن برای جا و مقام مجادره نکن با مرد، با مرد پاک نظر، کار آگاه، خوشیار و نیجخو مشورت کن در جنگ، اگر مسئولیتی به تو هست، بسیار قواظب باش از مرد قوی و متنوید و کین دور باش با مرد عدیب دشمن نباش با مرد نادان راز مگوی حضور دانشمندان را گرامی دار و از ایشان سال کن و جواب بشنو به هیچ کس دروغ مگوی از بیشب مال مگیر ما به نزد بدکار چیزی گرو نگذار نه به راز و نه به دروغ هرگز سوگند نخور چه خواهی عروسی کنی اول مال فراهم کن خود برای خود زن انتخاب کن تا توانی ملم را به زبان مهیازار اگر در بی مال و مکنتی اول آب و زمین بخر زیرا اگر ثمر ندهد اصل آن باقی است به ضرر و دشمنی کسی راضی نشو تا حدی که میتوانی از مال خود دادودهش نما کسی را فریب بده تا دردمند نشوی پیشوای نیک را گرامی دار و سخنش را بپذیر دختر شم این را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی بهعروسیده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی است چون توخ در آن بکارند حاصل نیک و فراوان از آن به عمل آید سخن را آشکارا بیان کن بدون اندیشه سخن نگوی برخلاف قانون به کسی واممده با زن فرزانه و شرمگی نروزی کن و او را دوست بدار مردی را به دامادی برگزین که نیک خوب، درست و دانا باشد اگر بسیار مسکین است بسیار عیب نیست مال مکنت از یزدان برسد مرد فقیر و بیمنوا را تمسخر نکن شاید تو نیز روزی بینوا شوی اگر تو را فرزندی است به مدرسه بفرست و به تحصیل علم گذار. زیرا علم و دانش چشم روشن است سخن به موقع بگو زیرا وسط تکندوم بهتر از خاموشی و وسط خاموشی بهتر از تکندوم است. مرد راستگو را برای پیغام بفرست فرومایی را مشورت مکن و شخص محترم را در پایش پاداش رسان خوش صحبت باش شیرین گفتار باش منش خود را نیک بدار از نیک داری خود غرمش و رجز مخوان به رئیس ها و پادشاهان خیانت مکن از مرد بزرگ و نیک سخن پرس با دزدان معامل مکن و آنها را گرفتار نما از دوزخ یاد آورد و کسان را به انصاف مجازات کن از هرکس و هر چیز مطمئن مباش فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی بی گناه باش تا بیم نداشته باشی با مردم یگانه باش تا محترم و مشهور شوی راستگو باش تا استقامت داشته باشی متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی معروف باش تا زندگانی را به نیکی بگذرانی دوستدارد این باش تا زندگیت به نیکی بگذرد مطابق وژدان خود رفتار کن که بهشتی شوی سخیل و جوان باش تا پاک و راست گردی زن دیگری را فریم بده تا روانت گناهکار نگردد با مرد قلب نشناس و ناسپاس معاشرت نکن روح خود را با خشم و کین آرونده مساز در هر گفتار و کار تواضع و ادب را فراموش مکن هرگز ترشرو و بدخو مباش در انجمن نزد مرد نادن منشین که تو را نالان نشمارند در مجالس در صدر منشین تا تو را از آنجا بلند نکند و به جای پایین ننشاند به مال و مهنت کسی چشن مهینداز زیرا مال و خوشی جهان مانند است که از این درخت با آن درخت برشیند و از هیچ کس بین ندارد دختر خود را به شوهر خوشی ها داناده اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام نده تند و عصبانی مباش زیرا مرد هسبانی مانند آتش است که که در پیشه برفروزد و بدتر خوش که را با هم بسوزاند با مردی که پدر و مادر از اونا خوش هم کار ما باش کار و ناخوشنودند همکار مباش تا گناهکار نشوید برای شرو مرتکب گناه مشو دروگ و سخنچین مباش در انجمن نزد دروغگو منشین چالاک باش تا هوشیار باشی سرخیز باش تا کار خود را فهنیکی به انجام رسان دشمن کهنه را دوست نو مساز زیرا دشمن کهنه مانند مال سیاه است که بعد از صد سال انتقام را فراموش نکند دوست کهنه را گرامی دار و در دوستی او استوار بیست یزدان را صدایش کن و دل را شاد ساز تا یزدان نیکی تو بیفزاید خوی پرانان را نفرین مکن زیرا آنان پاسبانان مردماند ای پسر من بشنو تو را میگویم که بهترین ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و پایان بمیرند ولی علم و دانش همیشه باقی می‌ماند. در حفظ دین بکوش زیرا سعادت روحانی از آن برسد همیشه روح خود را به یاد دار برای خود از کسب و کار احتراض نکن دست از دزدی و کاهلی و هوای و حوث نفسانی بدار زیرا هرکس که نیکی کند پاداش نیکی یابد و هر هرکه بدکار گشت به سزای سخت خواهد رسید هر کس که برای دیگران چاخ کند در آرستند مرد پاورسان در آسایش مانند و بدکار همیشه گرفت اندوه اندو هست اگر که افصان مار خوب بدانیم ولی دست به مار نزن تا تو را نگزد. اگر چه شناوری به خوبی دانی ولی زیاد در آب مرو تا با هیچ کس و به هیچ آین پیمان شکنی مکن که آسیب به تو نرسد مال کسی را تا مکن و به مال خود میکسا مغرور و خود بسند و باش زیرا انسان مغرور چون مشک پر باده است و اگر باد از آن خالی شود چیزی از آن نمی‌ماند. مردم دارای همان خوی هستند که از زمان شیر خارجی کسب نمودند هیچ فرازی بدون نشیب و هیچ نشیبی بدون فراز نیست چه خوشی رسد بسیار خوشنود و غروم شد چون سختی رسد غمگی نفسرده ما باش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بلی درقی دارد خوراک زیاد مخور از هر خوراک مخور و زود به زود به مجلس عیش بزرگان مرو که پسند دیده نیست ای پسر من تو را میگویم که بهترین چیزها برای استخابت، تعلیم و تربیت است. پاینده ایران با امید موفقیت، سلامت و دانایی همه ایرانیان. یک که به بعد از این نگاه کنید، تغییری هست برای یکی از محصولات کاش وزن و افزایش انرژی. امیدوارم که مورد پسندتون قرار بشه. خواهنده ایران درود اگر که مایل هستید که وضعتون رو کم کنید یا سطح انرژیتون رو اضافه کنید من میخواهم تجربه خودم رو با شما درمیون بذارم حدود 9 ماه پیش من حدود 8 کیلو اضافه وزن داشتم سطح انرژی پایینی داشتم و اگر میخواستم با بعد از یک یا دو کیلومتر درد زانو هم شروع میشود از هربالایف استفاده کردم اضافه وزدم رو کم کردم سطح انرژی مو بردم بالا و امروز توی کوپنهاک نیمه ماراتون دویدم حدود 21 کیلومتر. اگر مایل هستید که وزدتون رو کم کنید یا سطح انرژیتون رو بالا ببرید به دنیای هربالایف خوش آمد موسیقی there's no place